دوم بار آمدن روبه بر آن خر گریخته تا باز بفری بدش پس بیامد زود روبه سونگ خر گفت خر از چون تو یاری الهزر ناجوان مردا چه کردم من تو را که به پیش اجرها بردی مرا موجب کین تو با جانم چه بود؟ خیلی دیر خس جوهر تو به انود همچ کم کو گذد پای فتی نارسیده از ویورا زحمتی یا چ دیوی کو عدوی جان ماست نارسیده زحمتش از ما و کاست بلکه طبعا خسم جان آدمی است از هلاک آدمی در خرمی است. از پیه هر آدمی او نسکلد. خوب و تبع زشت خود او کی هلد. زونکه که خبس ذات او بی موجبی هست سوگ ظلم و ادوان جاذبی. از زمان خاند را تا خرگهی که درندازد را اندر چهی که فلانجا حوز است و قیون تا درندازد به حوزت سرنگون آدمی را با همه وحی و نظر اندرف کندان لعین در شور و شر بی گناهی بی گزند سابقی که رسد او را ز آدم ناهوی گفت روبه آن تسم سر بود که تو را در چشم آن شیری نمود و من از تو به تن مسکینترم که شب و روزا در آنجا میچرم. گر نه تلسمی ساختی هر شکم خاری به آنجا تاختی یک جهان بینوا پر و ارج بی تلسمی کی بماندی سبز مرج من تو را خود خواستم گفتن به درس که چنان حولی اگر بینی مترس لیک رفت از یاد علما موزیت که بودم مستقرق دلسوزیت دیدمت در جوه کلب و بینوا میشه تا که آهی تا دباب و نباید تو گفتمی شرح تریس کن خیالی می نماید نیز جسم